اللهم اون صحبتی که دیروز شد راجبه اینکه که چطور نظام اجتماعی میتونه تکثیر دیگه در تهم امدنه این رو من تمامش کنم ولی که دو نکته اول بحثی که مثلا در مسئله هست مثلا حضر معناش لا توسلت خب این بحث در اصول محرق شده اهم رو بشه نهی از ضده طبعا تطریق دیگری هم برش کردن و اون این نهی مختصی پسابه هست یا یعنی. نه نماز باطله اگر ازاره نجاست کرده و نماز نخونه که از کردیم مثل مقبول در نماز درسته سعی کردن با قرابطوب نماز درسته وازه آدمون بحثی بوده میشه بحثی که در اینجا هست اینه که آیا عزره نجاست معناش لاتوسن لحظیانه این رو سعی کردن در حد محذور لحظی که مثلا عزره نجاست معناش این بود یا سعی کردن در حد یک بحث قانونی یعنی تلازم ما به وجود یک شیء وoverline زدش در حد تلازم قانونی واسه بررسی کنند تقی تصوری که ما عرض کردیم این اگر ثابت بشه یعنی اگر ثابت بشه حضرت نجاست معناش را تو هست بحث لحظی نیست قانونی هم به معنای عام قانون نیست یک بحث اجتماعی نظام اجتماعی معینه ویشه ای او هم رفتی به مسئله حضرت نجاسه نذاره به ریشه او برگشتش و عبد المملوکن لا یهدر و علاشه یعنی این حالت برای عبد هست این که اصل اولی این که لا یهدر و علاشه میتونه بکنه یکی از سرام نماز سوندن یعنی بدون این که هم بود او نمیتوانه نماز بخونه عبد المملوکن لا یهدر و علاشه ولیزا در اون وقت معروفی که قدم های اصولی ها چی ها هم داشتن مثل محوم شیخ خسریر محتضا و دیگران که اصالتال حق با ظاه اختوتار با خای کپی و ظاه اختوتار یعنی من اصالتال یا اصالتال اباغه مثلا اصالتال من رو اینجور تحرید میکردن چون ما عبد هستیم عبدیمتون در نگ و بدن ما ملک مولاستیم چون تصور کن به جزی مولا همون عبد من بکن در و این از ذن ممنوکلا یادر علیش با وجود ازل نجاست کاملا زنده میشه یعنی کاملا دیگه موضوع این هست امجال ماموکلا یادر علیش با وجود انور به گزار نجاست لایادر علق صلات صلات دیگه محذورو نیست یعنی اگر هم پی نفسه هر عبادتی احتیاج به اندازش وجود اون امر دیگه جای صلات پس در حقیقت نقطه اساسی این است که این لاجو سله رو از چی دردوگیه از مقام زباق لحظی از تلازمات قانونی یا از یک فهم اجتماعی مستند عبد المملوک اندای را رو عراشه امیش که برمون درمالله مثلا عبد المملوک اندای از رو عراشه دست ما اینه که این از این درامه البته این عبد مملوکند به زمینه عزه عزه نجاست یعنی وقتی که این عبد احساس میکنه هیچ حالی شروع کنه اگر اونم مولا گفته باشه مولا در این ذهن گفته اجازه نجاست رو خواهم وقتی اجازه نجاست شد به طریقی اجازه نماز نداده نماز نداده اون اجازه رو چون این خودش بی نفسه و به جمعی اجزاء وجودش ملک مولاست قابل مولا چی این یه نکته که نکته نهایی که علی محمد تصویری بکنه نفتی دوم تصور نشه این تحلیل رو که ما اعرض میکنیم فرسون به ذهن بیاد مثلا فرسون به ذهن ما آمازه جفلیر دار این همون بیان یعنی تحلیل و توضیح بیان امثال سید مرتضا و دیگرانه فرمید انجرده مثلا سید مرتضا میگه در مثل جعنی به ماهن رو از مسئله لزوم احطاعت مورا برهم در که از استاد ما اصداد ماروکویی مرموانیانی من همین را اما مثل اینایی زاهر عبارتشون لخکم الهالاست زاهر ظاهر استاد شده ایش خکم الهال اینجا شکم الهالاستاد اقوال شده ایشان یا در باز آنه نینی خیلی ایشون تأثیر لخکم الهال به رزون اطاعت المولاد تو معالیم جانه اذا قال المولاد نرزی به ما این ازخنی یک شامنه رو رو در پ این اصولی همون مبنای رو که ما توضیح دادیم همون رو می خواهد حالا این تعبیر گفتن اون مطلبی بیره که من عرض کردم یعنی به عبارت نوعها این وجود رو از اون نظام بردگی و رابطه هم دومولا در میارن تمام بردگیه و من یه وقتی توضیح رو عرض کردم زادن تو نسبت دادم و که انسان وقتی در عبارت اصولی محصوصا تعمالی که میکنه راهی احساس میکنم مرادتون اینکه این که اعلیه یعنی از لحظ مستقیم در نمیان این اینطور که من احساس میکنم به انجانه کرد نسبت معین نمیان وقتی مراد از اینکه یعنی اقلیه یعنی مستمل به لحظ مباشرکن نیست مستقیم از لحظ در نمیان خب راست این مفضل اگه اراد از برگاهی گاهی ما دسته که به جزئی یا هر اجتماعی یا فهم اجتماعی یا درک اجتماعی یا زمینه های اجتماعی یا یا اجتماعی تا مختلفی می شد پس این مدحس خیال نشه که از منفردات این حقیقی توضیح ما به اصطلاح روش خاصی بود و الا یعنی ما آمدیم اون به مثل مرگمی سید مرزا تحکیل تحقیل بکنیم و توضیح بد که اینها هم در استکاردات اصولیشون این طور بوده که مثل حضر نجاس اگر توشی ها تو و هست اون رو رابطه عبدالموله هاست نه اینکه خوده حالا این رو دیگه اینا ندادن چون رابطه عبد مولا در زمان خودشون جاری و ساری بود و از که نظام قانونی در محتی امدینه جاری نبود خابی نفعی نصوص شریعت را همینجون منا کرده ما بخصومه این بود که این مبانی ای که به ازها در اصول آمد اینا ریشوهاش یکی بر میگرده این که حالا همه احواس اصول که یکی از احواس اصول در این استظارات ریشنس در بر میگرده به مسئله نظام عبد و مردان. نه این که برگرده به نظام قانونی نظام قانون رو فعلا با اجمالش یعنی اجیمالن حالا چون نظام قانون شکلهای مختلف داره در مقابل نظام عبد و مولان در نظام قانونی ما اینجور تصور میکنیم فرق کاملا آزاد مکیه کسی نیست مکیه کتی برای کتی برای نداره یه نظام اجتماعی که حالا داره مسالح خاصیست در جامعه های بشری مسالح در مسالح دنیاویست یعنی از اینه که ما در دوم به جنوی میگیم چای لحظه من این مساله که در نظر میگیرن از این دیگه بشه ماله بعد از مرگ و قبل از بلدست نگه قبل از این اغاز نصفه در نظر نمیگیرن این حالا مقرار این مسائل و ملاقات محدوده در حسابال خانمی ما یه مسائل و ملاقات محیل نیست اونها محدوده مال قبل از این اغاز نصفه نیست بعد از مرگ هم نیست بعد از معنا دستاورد صورت دو سر هم که تسوینه گیر یه دغدغه شوهه اما این کالا مثلا عالم برزخی باشه بعد از قیامتی باشه بعد از باشه که سایه باشه قبل از ولادت مثلا عالمه زردوش اینا تصوراتی چنین مطالبی که در مکتبی رنگی اومده در مقاصد ما در ابوان بشر اینطوره نظام محدود است به زندگی مادی دنیوی یه ملاکات معینی است در این ملاکات این مهر خود شخص با اون شخص هم آزار تصور میشه و برای به اصطلاح انتظام جامعه و به اصطلاح که جامعه پیزان میکنه میاد یک سری قوانین رو برار میدنی که میاد اون ربط بین افراد رو هفتی بکنه البته که خب مصالب علمی هم گفته میشه برای اینکه خود فرد و عنوان یک فرد روش بکنه شما یه دیوار در نظر بگیدید این دیوار از آجرها کشیده ترده طبیعتا شما به صورت همیشه در مصد دیوار دو بخص داریم یکی که جنس آجر خوب باشه مثلا آجر از خاطسته درست کنیم کنیم دو این که این آجورهای که میشین رابطه ای که حاصل رابطه درست باشه اون رابطه ای که این دیوار میگیم صافه یا یعنی این دیوار میگیم کجه یا ممکنه بهترین آجور رو ما اینجا به کار ببریم اما یک جنوبی که عقب کرد موقع مثلا اون هیئت اجتماعی درست در باشد. اینا بحثشون اینه که ما اضافه بر اون که فرد رو باید به عنوان فرد بررسی کنیم و ملاقات رو در نظر مسائل مساله یا حالا در فرد بیشتر زرانه افر بکار میدارید در نظر بگیر در جمع بیشتر مسلحت و به مساله و مقصد بکاریم ما غیر از این جهت یه جهت اجتماعی هم داریم که در اون جهت اجتماعی رابطه ها برقرار میشه. و لذا ممکن است در یک جامعه افراد به عنوان تک تک مثلا مشکلات مادی نزد شوراهای مشکلات خاص ذیلیا بر اما هیئت اجتماعیشون درست نباشه، رابطه اجتماعی درست باشه. این خودی که بحثی در امروز خیلی مفتنه بعضی ها خیلی مصرفن که ما فقط به فکر سر باشیم بعضا با مصرفن به فکر حالت اجتماعی باشیم او سهیش هم هر روز هر روز مراقص باشه هم جنس آجور با جنس خوی باشه هم رابطه ای که این برای تیجا به دیوار در نظر یه رابطه ای باشه <تصفيق> بخش قانونه ما که ترکیده نظر هم تو جایی سواروز نه کلا میگن ما به فکر اشتباه نیستیم فرق صالح باشه سعادتش رو جامعه سعادت <تصفيق> به طور <دونه> پاروز <تصفيق> میگن جامعه اندر وهمی خیالیه شما در یک جامعه پس در یک شرعه میگیم نفر زندگی میکنم پس میگیم نفر ده هزار خانوانه هر کسی میکنم فیلمس که زندگی رو باشه و خواهر باشه،, باشه کافی دیگه. اون رابطه مهم نیست اون که در فکرش اونی که اساس فرق ق اصلا یه اون هیئت اجتماعی یه امر ذهنیه خود ذات خاص خودش خودش ملاقات نداره همین امر اجتماعی ملاک نداره بشری نکته چیه بشری به عنوان جامعه, جامعه ملاک داره اینطور نیست اون تاکید فرادنه حالا این بحثشون جاش اینجاست بشری خاص به خودشه من نمی‌خوام راجع به این بحثا بشن جرا مثلا خلاصش اینه که در نظام قانونی یک حیدتی علای هم در برابر او خارج از سیاست افراد حتی خارج از سیاست حاکم به نام نظام و به نام قانون وجود داره اون خودش یک حداثتی فی نفسه داره افراد برای حفظ جامعه بلکه بعد از به کارها گندید فردی هم داره برای سلامت فرد و جامعه این رو باید ایجاد بکنن که مساله و مفاصل و مزار و منافع اون مستقیم به خود اون شهرن یا مکلف یا مردم می نسه. در نظام قانونی اینه در نظام قانونی این که شخص خودش پیرو به شخصیتی دیگری باشه شعار شخصیتی دیگری باشه این مطلب نیست اونی که مطلب این. این به اسم کنم بودیم اکمالا نظام قانونیان شکل های مختلف داره بحث خاص داره در مقابل نظام بردهی و این نظام هر چیزی بود جای خودش قرار میده بیداریم یکی سیم مثلا نیاشتیم داریم مثلا پس کنیم دانمار خودش روی داده تو جا بکردیم مثلا پس کنیم به یکی اون سوال خطوبوس هم بود مثلا کسی سیادتش میگه با دستور فرمان انجام بده چرا چون میدونه روی حد محدود داره کار محدود. هر ای که داره ای نظام مالیه میگه یا سم معنی غیر ایجاری انجام ده. چه, چه جام اون حسابش محدود نظام اداری هم حسابش تخلق یا تمام خودش خودش ای ای ای شما محدود تخلفیه که نظام اداری میشه قرار دادن تمام که خودش گرفته خودش قرار گرفته چی اون راه قانونی انجام ده. بودن و نبودنش بودنی که ماشین نبودنش هیچ فرقه نیم کنه داریم واقعا اون اصل اقلانی در زندگی انسان اون نظام اقلانی همینه اینی که ما تصور بکنیم که مثلا مردم و آدی ها از مثلا اهلا هزه تو همانی یه تفکر بسیار باطلیه مثلا یه که در نظام سنفره هر کار غیر از ها انواع سلطان ها اصلا نظام با به عنوان توجیه خانونی شما نظام جنگل اصلا یک کسی چون کسی خود برد داره ای جنگل باشه یک کسی یک کسی بیشتر داره سلطان باشه اصلا نظام سلطر خودش کارن به محض رادش شود به فتیهات خارجیش خود این نظام سلطر یک توجیه خانونی باید پیدا بکنه به چه آنوان ما بگیم یک سلطان باشه این صرفش چیه؟ نکتهش؟ چه نکته اختی این بحثی ای که شما اونجا مطرح میکنید در واقع لازم نیست غیر از همین بیمه مسائلنا که از داخل و خارج ازن احساد و جلو وجال و allerlei و کباله. حالا غیر از اینکه موضوع در تاریخ اومیزو ده اون خاصن چی؟ فقط بحثش به خودش غیر از اونجا اصلا توجیه قانونی رو نیرو وارد تکواز اساس کار رو منتسبی. حالا تاکید صرفنت مشروطه این با به سلطنت استرداد. اصلا توجیه اصل سلطنت چیه؟ چه چی نقطه داره؟ چرا یک حربی باید مثلا با روان سلطان برای مقاید و بقال برای سلطنت هستم اما حکومت درمان تای خود شاخت سلطنت هستم اصلا فلسطه موجود شخصی به نام شاه چیه؟ چه فلسطه چه فلسطه حقوقی باره برای موجود؟ چه نقطه داره؟ باید یک کیفیت، دو شناسی باشه، یه نکته خارجی باشه، انقلاب صنعتی استوایی باشه، یه نکته قانونی باشه، بدون اون اصلا معنا نداره. حشبه سر اینه که در نظام قانونی ما شما میایین بهش این که بفرمایید افراد رو در پرتو شخصیت یک شخص حالا اسمش رو بزنیم مالک، اسمش رو نظام برده‌گی، نظام مولا و عبد اسمش رو بزنیم حالا سلطانی که سلطان بس نیست این یک توجیح میخواه در موابط این تفکر از اون تفکر رو سویه نه نظام اجتماعی نظام اسمی نفسه خب، یک دوابط خاص خودش داره دارایی رابطه خاص خودشه ما هم در موابط اصول از ترد در دستبندی مباحث اصول یکی از موابط توابط به اعتبارات قانونی در بحث دست و دنبیه ارکانس اصول متعرض شدیم که مثلا ادخواس اصول به نظر ما مثلا شایسته از مناسب اینطور پراهی بشه یکیش راجع به حقیقت اعتبار اتباره که اصلا چیه واقعه چیه چیو تفسیر بکنیم چطور ترویر بکنیم یکی هم ترابط در آیان در اصول ما ناشون ملازم ها سه چون در تلازم یکیش به بست لزوم و اینلیت و معلولیت و حرفا ما اون ترازور رو برداشتیم به جای اون کلمه ترابط داشتیم که اون نقه یه حالا رفتش به نقه لزوم رو دارم به اعتقاق رو دارم چی اون بست دیاری؟ اونیده که ما حرار دادیم ترابط ما به اعتبارات قانونی بود خوبه برداشت بکنیم ما مواثره این یکی از بحثای زندهی در حسول این ترابط چرا؟ چون خود قانون و اعتبار قانون فی داره یک واقعیت میدین همچنان که در دفتت ما یک ترابطی هست ما بایی نفر از اون گرده شخون با مسئله سلامت کبد نفر بایید توی قانون هم یک ترابطی باشه گاهی از اون تعبیر به ترابطی میکنیم که قانون را آمنون گاهی از اون تعبیر به پسانق و سمتریت ما معتیم باید توی اصول بربستی بشه، وحث باشه, باشه، ریشیابی بشه. الان میشه اینکه ما یعنی ما بعد کفشیم ایبو اصول اسلامی خودمون نیمه خدا سویشان تحسیفی اصول فیضی داریم دوستان سویشان شد و اینا ایناره شما بی شاهرو رو, پیدا رو کنید که یه از مسائل تر میشه و حالا های هم میشه بست ما این یکی از اون مسائلی که بازر همینجا اومیشنه با این مسئله حل بشه همین مسئله تجاریه که ما تمام ما مرتبه این که مثل مرحوم آید و دیگران از فیلیشون نمی که تغییر عبدال مولانی نظام عبدال مولان در مقابل نظام مخاب در در ارتکاز اونها البته فقط این نیز از از این برای به این که تفکرات فقطتی و تجسم اعمال و حیفت نمیدونن انسان و حیفت حقیقتی توحری تبدیل و قابل به فرقی دیگه هست. این دکیجی گیری در اینجا کردن به اطلاع دلهاد و اصولی اساس بحث بر این است که معیار در استحقاق و حقوبت چیه ایشان مصبعاً معیار در استحقاق و حقوبت قبح فائلیه هم و این قبح فائلیه هم در معصیت واقعی که ما معصیت میگیم موسیقی داره هم در اصطلاح هم در معصیت خیالی اون معصیت خیالی تجربه شیم چون محطق خیالی هم وجود داریم این آب میخوره با امان شراب بعد آب در میاد. این اسم چیزار محطق خیالی رو اون قبر قائلی در هر دو هست. چرا چه توضیحی می دن لهمه ها حد کن لغرمت المولا و زلمان حل المولا اون دقت بکنیم حضرت مردم ها شانسه نگفتن که بایان داری دیگر ها می حالا خیلی از اون جرد فلسفی و تفکر فلسفی اشتنار ما فعلا موقع از قانونی کتقدر کنیم از ظاوی اکتبارت قانونی برمسی کنیم خیلی از اون مثل تجرس و معمال و جذاب از نظر و اول یک مقدارشم به لحاظ خستخور حربی وارد مدل شدن با خستخور بردادن به فائل نه به و نتیجهشون این شدن. ما معتقلیم این رو اگر از نظر بوده قانونی بکنیم بررسی بکنیم جرحت کنه علم مولا حد کنید حرمت مولا زرمون علم مولا این به لحاظ قانونی مناسب است با نظام عبد و مولا من میخواد این عرض اما اگر شما در نظام قانونی همون مطلب رو بررسی کردیم زرمون علم مکلب حد کنید حرمت انسان نه مولا برای جامعه جامعه ضعیفه جامعه جامعه ای که درش قانون نباشه بیچاره است. هر جو مرزی بقید از از آیان نظام ولو در حق نباشه نظام بهتر از لانظام یا اون جامعه مثلا مذهبی باشه مردمش مذهبی اون هیچ نظام سوچی نیست اون چون لانظام در شرحش بیشتر از نظامه ولی اون نظام پس این نظام فاسدی باشه نظام فاسد بهتر از لانظام چون در نظام بلکه نظام بفهمه ی یه کاری با دگری انجام بده. در این نظام مشخصه نمی‌دونم به کی مراجعه بکنه با کی صحبت بکنه کی طرف حساب آدمه، کی تصمیم میگیره کدا قضیه به نتیجه میرسه کدا قضیه به نتیجه نمی‌رسه. این نظام کار از خیلی مشکل می‌کنه. منو برای خوب دقت بفرمایید ما معتقدیم کارمون به سمت‌های چی بشه؟ به لحاظ اگر ما آمدی قانون رو به رابطه عبد و مولا تفسیر کما این که همین تکثیر و قبره متعارف می کنید کنید رو حتی تو مواهد سرخاز اصلا یه اسخنی داز بر وجود میکنه چون مولو اگر چیزی خواهد اولا نزد این نتیجهش میاد تو بحث کیفر میاد کیفت رو اینجوری میبینه، یعنی وقتی بخواد بیاد کیفر رو در نظر بگیره اون مواهد استضاع بود تو کیفر هم که میخواد و جزا در نظر بگیره میاد همون تصورات که خب چون نظام عبدالمولا و مولا به هسب قاعده خب اولی به چون من یک انسانم ن ها این انسان انکه زیر دست من باشه عبد مملوک ش چیز میخاد یک رابطه میخاد اصل اولی ش نیست اون برای خودش یک انسان من برای خودش یک انسان ان پس وال یک نظام می بیاد این کار رو بکنه حالا اون نظام عبدومولا این اصلا وقتی شد عبدالمندوکن دایرده دا و علاشی، اون وقت کیفر بعدش قربش در تمام این مراهلی این اراده مولار در نظر دید این رو باید تقنیم قیل از این را می نداریم از از از کردیم ما سیستا تصور بکنند این رو دین درست کرده برای اغلقوش عبدین ملت ها برای اینکه مردم رو به درگیری دیدیش و به انهتاس بکیش بس این رکید تحصیل نه صفر تحصیل بی بوده‌ایه یعنی تحصیل نه کارا تاثیر زیر این وقتی نذار در هر حال اگر ما در جامعه نظام عبد مولا باشیم یا در یک جامعه نظام فودالی باشیم یا در یک جامعه نظام سرمایه‌داری بود یا در یک جامعه نظام سوسیالیستی و اشتراکی بود خاینه هر جامعه برای یعنی هر نظامی بر خودش یک زحمتی داره که <تصفح> ما این معترف باشیم که کار هر نظامی یه دیدگاه توجیه بکنه تصاببا چون خیلی از شما با فرهنگ مارسیستا شما نروش این خود ماسیستا در تفسیر اسلام چون به طور متعارد اونا اسلام را برای گذر از مرحله دردداری به مرحله فرداری میگیرن به طور متعارد نوازن زمان رسول الله بردداری بود وقت جامعه عرب می میکرد که از مرحله برداری گذر میکنه مرحله فرداری تصیر کنی کنی کنی کنی کنی قابل فهمه و این مرحله گذری بوده از برگردی چون قائلن که مثلا اول به شطر سیاست کمونیست اولیه بوده بعد به شطر برگردی شده بعد به صورت فئودالی و بعد شده سرمایه‌داری یا بعدم اشتراکی و سوسیالیست و بعد هم مرحله مرحله‌های کمونیست تحقیق یا تفسیر من شده. اینجا. از تو خوبی چون که وقتم گذاشتم اینجا همین‌طوریه اما شما واقعا که مارکسشون در خط دیوانه خیلی شده هم به لازه فکری، هم حکومتی و هم به لازه تصویر پیاده شده خیلی دیگه مثل تابر جذابیت تابر میشه رو رو و رفتی محافظی تابرها میشن اونجور اقتدار را را را بشه هر حال زعف این نظریات و نابودی، بطلان این نظریات آشنا شده نیست اما این تصویر رو من از لیکن خود اونها متحریر هم چون من بحثه دیگه میشه در تاریخ و اگر راست باشه چون من اگه وسواس دارن چیزایی که از یک کشاورزی نه دورن، میگیم اگر راست باشه، چون ممکنه تو زیاد نره و هر هم البته نه اینکه در حال حروفا اگر ها هست، هم واقعه ما قبولی بکنه که بوده. از مرحله بوده بعد که چون از یعنی بذرها رو فرستان سر زمین تازه زمین واسشون بشن کشاورز، کشاورزونه فارسی یا به اصطلاح عربی خودمون اید. ایز زرگی هست همون رقییت میتوانی کافر کافر رخیم قلع ازدام زخیر رخمانی اینا همه جا بجا مست در مقابل پرودا چون در ایرام زمین به اصطلاح در اختیار دولت اسلامی بود زمین ها را دست افراد مثلا هزار اکتار دور هزار اکتار تنگزار اکتار این کارگر بودن که بیشترش هم ها و زرگوشی های بودند. به این کارگرهای هایی که زمین بودن و همراه زمین جا میشدن. رو میشنن هر چی بودن هر تاریخی که بخوایید معادل کلمه میدید یه که رعیت مدر فاسی همه با این با جسه بلند و گنده اینا همه به شیل خارجیشی برده این ها خارجی, شد. خارجی با در حقیقت اینو نظام اجتماعی بوده که بعد از اینکه عراق به عنوان ارز خراجی درآمد یعنی به اصطلاح ارزه خراجی خراج در دولت عربی احساس اندیشه بهره‌غریب کلمه بهره فرا به اصطلاح درامد درآمد خود چون خراج آمدنه خراج اصطلاح اون شکلی زمین درآمد درامد زمین, زمین های درامدی ارزه خراج ارزه خراج خراجیه زمین های درامدی مرادشون از های درامدی این بود که خود زمین جابجا جا نشه خود زمین ملک نباشه منتقه به identیگه نشه از درامدی و استفاده کنن خراج یعنی از درامده بهره هستفاده این کلمه حرازی خراجیه اگه بخویم به فارسی ترجمه کنیم زمین های درامدی یعنی زمینهایی که خرید و فروش نمیشه از درامد و او اونها استفاده می و خلق بنی عباس چون واقعا خب واقعا مذنر کامله تو اداری در زمان خودشون خلق بنی عباس می آمدن 5000 10000 هکتار. ده هزار منطقه ای از به یکی از وزراء غیر وزراء در فرسن مثلا زمان به دو میلیون درخن این باز واگزار این که دیگه به هر دو میلیون و نی. اون نهی مجیون شبیجی با کده سیزد بجرم کلی بگیرد به سلطان دیدن اصلا کلیفیت تشکیل نظام فعوداری در ارام این شکلی بود قیقت فعوداری بود که در ایران بود که اصطلاحا به جلی فعودار یا عرباب اونها خاجه میگفتن خاجه را هست این دو تا نظام با هم دیگه پهند من این حوال در بحث تاریخی رو سی او سی او سی او سی او سی رفتن اصلا خدمتون مرحله بردیگی بوده بعد رسیده به فدالیس بعدا قرن هیجدهم اوال هیجدهم و رسیده به مرحله سرمایهداری اعتقادش بود که با رشد سرمایهداری نیرسه به مرحله سوشیالیسم البته کارایم کردن به نتیجه هم نرسید حرفهاییهم زدم یه هرف هر زیاد رو آثار خوده مارس و غیر صحبت خیل زیاد جاش اینجا نیست مناسب اون بعد از سوسیالیست و اصلا باید به کمیونیست و اولیه میسه که دیگه همه مصابات در دنیا حاکم میشه دیگه هیچ حاتما محکوم وجود نداره به اصطلاح نظام نهایی مخدوب بشر شبیه که ما مدیم مثلا دولت امام زمان اونا نظام مخدوب کمیونیس کمیونیس و کمیونیست نهایی میدن که شبیه کمیونیست و است این بحثی که بین خود می‌سازد که توجهی اول نشکندم از اسلامیان پسوسش کی کرد؟ اما نکمی زد چین شد، چین شد ولی دیگران از ایوانو و دیگران دیگر. اینا بحثشون و کمیست ایوانی یا ایران از محبوب اینا بحثشون این بود که نظام اسلامی چی رو بی تفسیر بکنی تهرانی تفسیر تاریخی بیشتر تفسیرشون گذر از مرحله دردگیری و مرحله کودک تفسیر بنابراین خودشون با این مطلب به شدت وقتی برخورد میکنن اولا در عین رش فئودالیسم در دنیای اسلام بردگی هم به شدت وجود داشت و او هیچ اون محله گذری هیچ شواهد تاریخی نشون نمیده که بردگی در دنیای اسلام اجنبی اصلا اثر بنابراین صورت 100 سال قبل هم وجود داشت با همین لغو بردگی در آمریکا شده صداها در دنیا ما هم به این تغییر رسیدند در دنیای اسلام بود خب این اون نظر انتقال نظام میسه یک مرحله بیره مرحله دیگه با مرحل که شاید بیه که بشه در از رضا زالیش کل در وقت همون جامعهی که به قول ها نظام فقداریس بود مثلا یه حکومت موازی و تشکیل شده بود که این حکومت کاملا ضد فقداریس بود حکومت فاطمی های مست فاطمی های مست که شیعه نشیش شیش امایی بودن یه نظام سوسیالیسی تنبید داشتن یعنی نظام سوسیالیستی خوب من نمی‌خواهم از که این بخش تولانیت فارغیه، چون شنیدنیم که از حجیری که خایصی بیاید خایصی این بیاید که خیلی از منابعی که باید در اختیار دولت باشه، اینا را می‌ندازد و مردم باشه و ادالا باشه، اینا را در اختیار سلطان و پادشاه و حکومت و دولت هستند تا از جنبه‌ای استثمار و غلابی جلوگیری بشه. به آن و ظاهرا حالا من سکه شو خصوص چیزا نمیبینم که سرمایه تو رجما با اورهایا به اسم انگلیس کاستر کتاب حساب ما در کاپیتال خودش هم دارن من شماره سکه شما که ذهنم نیست این چند ذوشه خود ماکس تعبیر میکنه وجه توغید و آشیاری تو خود مارکسا میان معلوم میشه ما معتقد بوده که این تفسیری رو که ما درباره باره تاریخ دادیم و آسیا منطبق نمیکنه عندهم تفسير مرحله انتقالی و اون عقیده که میذارن اصلا در آسیا قابل انقضاد نیست حتی من مباحثی از مارکسای ایرانی در کنستونی در تفسیر خود این عبارت مارکس خوبی در آسیایی در حقیقت من ندارم اینه که مارکس این واقعیت را دید که اون چیزایی که تئوری به اروپا گفتن راش درومش من نمیذارم چون نمی ماس مالایشی وجود در اش بود. یا عنصر عجیبی یعنی عنصر خاصیه زندگی خاصیه ان من میموخام وارده مخصوصیات بشم رقب رو کنه اون وقت این تصورات یعنی خودش هم بیدیم نتیجه رسیده که اون هر کاری که گفتن در جامعه های ما در آسیا قابل انتباق میست لازم من،, من خیلی اجماع دارم اجماع خیلی اجماع تحبات کردم میخواستم با این اجماع بگم که این تفسیری که اینا سعی کردن برای این جریان و در, در اسلام توزید بدن خودشون هم با این واقعیت رو گروه که نیست این خودشون با ما هفت نیست برای بچه مکجه های اونا که بجای خودشون خودش هم به این نسیز این از خیلی توجیه میخواد خیلی شرق میخواد که الان وقتی من هم مساعدی است و جایی برس هم میجانیست به عدد کافی هم از برس هایش قرار در من حرف هم اینه اون حرف که توجیه بکنیم که دین برانوان افیون ملت ها برای ضرور باشه با اما از حضیر یه حرک نامربوطیه یه حرکی سه نداره. اما این رو باید قبول بکنیم خوب دقت بکنیم در توجیه قانونی وقتی کسی رو میک دیگری میدونیم باید رابطی ایجاد کنیم خب معنی علاوه که این یک واقعیت قانونی سی رفتی به دین نداره در جامعه ای که دین هم نواجه این میکن من اگر بخوام بگم این یعنی شما هفته تصرف خوبیه رادوشه به این خودم به این نقضی های تلا اگر بنا شد بگید این آها که این انسان کامل آزاده میدونید برده از عبید و برده از برده بان بسیار افضاد باقی شیده بعد سلطان شده هم خادوش های رو برده بودن اما بعد یه شخصیت اجتماعی خود صبح شکید پدر محمود قضنبی سلطان نامود قضنبی خود این برده هست اما خب چون فعال بود به مراسل بالاش را از این کسان که از جوزو سباکین معروض سی قل اسلام ملخبه سی قل اسلام و صبحان معمود رزنزد و سباکین مختلف جنوی اسلام میشه و افتر معروض به هنم در هستیم اینه که این بالاخره این باید یک توجیه یک نکته قانونی کار نداریم به اجتماعی دقت کنید. بحثا من اینه باید یک توجیه قانونی در این رابطه ا یک نفر یک طرف، یک نفری یک اصلا یک سوژی مثلا سوژی مثلا افلاسان داره در کلاب جمهوریت شده ایسا میگه اصلا از بندگی ازاداتی قادم خداها نیجور خلقه خدا خدایی نیگه خب این که هرز نامنوطی شبیه هرز رو نیشه داره آلمانی که طبیعتا یک ده حادث بندگی دارن یه دم آنکه آخایی بندگی خب این هرز روی که نازی ما آلمان متأثر کردن بردا نجاد اهیا هستند بر نژاد که این نجاد با دنیا رو حکومت اون میخوان مثلا نجاد دیگه اونجا نژاد سامی چون نازی ها رو سامی خیلی حساس بدن. سامی به و عرب ها یهودی و عرب رو سامی بیگه. این مکتب بر آنتی سامی سامی رو در زمان هیتلر و همین اساس که نابود بکنن این دو تا تصفیه نابود بشن, بشن سامی ها در مقابل اون نیاز در پای. خب این های تصوّرات که غلط تاریخی چیزی نیست که ما باهاش اسمش رو اینو بعدش اما به هر حال این رابطه ما تفسیر بشه. این تفسیر رابطه باید بکشه تا مرحله اذهاب و و بعداً این خداش برد اون تفسیر رابطه همینه به نظر ما. یعنی باید تفسیر بکنن که ای تو اگر حرف مولا رو گوش نکردی امانت به مولا لو خودمانم و بعد بور ابدی میگن نه این امام این زوال می‌دونه این باید تفسیری بشه راکی به دین ولی اگر ما میگن دین امروز خویی می‌پند، راکی بذین نه ولی تفسیر قانونی باید بشه یعنی اگر یک قانون نظام عبدال قبول کرد، گذشته می‌فروید. اگر نظام ابدی قبول یک قانون یک نظام یک باید قانونی به نظر ما تفسیر قانونی اینه و مرحله شکل همین سایه ها شما میتونیم رو اما اگر ما نظام عبدالعوضا رو امغای کردیم بیشوش نظام قانونی در نظام قانونی با تفسیر بشه فهم اون رابطه اجتماعی با تفسیر فرسید جا جا بروسه منتقده که قانون نیمه و این اجتماعی خب برد کی الزام آورش کرده چرایط این قرارداد چیه حقیقت این قرارداد چیه حقانیت این قرارداد چیه کی که که قرارداد بازی ما نشان بحثه بروری که ما باید این نوع توجیه یعنی باید این تفسیر قانونی بکنیم در نظام قانونی دیگه بحثشان عبدال مولان فرمی تمام برنگیره به خود رو میکردیم دیگه ظلم حلال نیست ظلم حلال ناسه دیگه اگر این شد وقتی که منشه ظلم علیه الناس خود فعل است به جای اون جوابی اون چه فاعلی اینجوری میگم اون فعلی اگر شراب بردی خود زندگی در بردی به خدا که خیانت نکردی اگر نماز به کار نگی اگر من تجرید زنا به کار برد فردو بعد من الله رسوله حربن الله رسوله برمیگرده به خودت نماز هرمونا بالا که این کارو انکسان این بحثی اگر اگر شما خوب دقت حرف من چیه نظام عبد مولا رو دیدی باز تفسیر این رابطه رو به جوری بکنید که خودش رو وابسته به مولا بدینه اما اگر تفسیر قانونی کنید نمیخواد وابسته اینه نکسید به وابسته بودن بید. لذا در اون نظام جنبال قبح فائلی مناسب با اون نظام ممکنه است ما تفسیر قانونی باید باید قبح فائلی ممکنه من کاری نمو خواهد اما انصافاً مناسب با این نظام این نتیجه دسته نهایی ما با مرمومان شانسه مناسب با این نظام قبح فائلی است مناسب با اون نظام قبح فائلی است یعنی ما در این که آیا حرفیشون شما قبول بکنیم یا نه به ذهن خود اون تح خرد داشتیت فلسفیون اون واقعیت انسانو به قول مولایم اباده تعمیق اندیشه ای و اون واقعیت شما برگرده فایل ما کار اون حالا که اون اونی که الان ما داریم تفسیر در تفسیر قامینی اگر بخوایم کیفر رو تفسیر بکنیم رو نظام عبد و باید موقعدار رو محور قرار بدید رو نظام قانونی خود مکلف رو محورن خلاص فعلا اگر متلف محور شد میشه قبه فیلی اگر مولا محور شد میشه قبح فائلی این بسید که فکر بکنید اینه که ما مؤسد بیم تحلیلش اینه اینطور نیست ما مثلا بسید خسابی بس اون اوناها بگه قبح فائلیست اوناها بگه نه بگه فائلیست ما معتقدیم این قابل تحلیل قانونی مرحیزی بهتر بفتید به مرحیزی اصلا مرایر منکینی یه جوریت این تا اینجای بخش مثل میگر کلمات این راجع به بحث تجربی بدن اون شد بحث عقل عملی که ایشون یه چند کلمات باید این باید باید باید یه کلامی اصحاب حصول در تجربی. مثل ما اون پیدا نکرم شدیم شما باید مراجعه کنیم شما فردا پیدا شده فعلاً که تو حصول پیدا نکردم اگر مطلب درس خوشه از الله